ونفسي بالتقوى الله ثم علموا عباد الله انه ورد في الحديث الصحيح ان جبريل عليه الصلاة والسلام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل روح الامين في سورة رجل سائل سأل روح الامين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان فقال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك حديث السحيح أمد أسكي فالشيباهي بشكل إنساني جل بكر برای تعلیم امت به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله آمد. و از رسول الله خلاصه احکام اسلام و ایمان و مرتبه و نتیجه اسلام و ایمان را از پیامبر سوال کرد. حضرت نیز جواب داد و این جواب برای امت تعلیم بود. سومین سوال روح الامین فرشته وحی از رسول الله این بود که سوال کرد مرتبه احسان یعنی نیکوکاری چیست؟ چی موقع انسان مسلمان به مرتبه نیکوکاری میرسد که دیگه حالا واقعا نیکوکار باشه؟ یعنی خوی نیکوکاری عادت و روش نیکوکاری در او، در انسان مسلمان نقش بسته باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: انت عبد الله کانک تراه فاینلم تکون تراف فایننه و یاراک مرتبه نیفکاری وقتی است که انسان کنون کارها را به اخلاص انجام بدهد که بیا خدا را می در برابر ذات باری تعالی استاده و انجام وظیفه می کند. بعد فرمود فاینلم تکون تراف فایننه و یراک. یعنی اگر این مرتبه برای دیگران برای بعضی ها برای بیشتر مؤمنان محقق نیست اما مسلم است که خدا مردم را میبیند یا حتی برای اون شخصی که به مرتبه نیکوگر رسیده اگر در بعضی حالات خدا را در طلب خودش نبیند مسلمان خدا او را میبیند شاید مهمترین بحثی که می شود از این استفاده کرد این از که کلیه کارها وظایف اعمال دینی عبارت از تمرین است برای خو گرفتن به نیکوکاری یعنی ما روزانه به وسیل نمازها تمرین می کنیم. تا بعد از نمازها در خانه در محل کار در رفتار و زندگی با مردم خوی خدا ترسی و خداشناسی داشته باشیم از یک نوع تمرین است به گونه دیگر تمرین کنیم تا از شکم پرستی لذت جودی به طور کلی ماده پرستی تسلیم غرایز جنسی و لذتهای خوردان نوشیدن شدن مبارزه کردن با این غرایزی که گاهی انسان را به حلاکت میاندازد حالا اگر ای که از این نمازها و روزه ها به دست می آید نوعی چند دستهی از همون مرتبه احسان باشد نماز روزمون مفید است ولی اگر بدلیل نقص و و نادرست انجام دادن و بعد از نماز روز منفی ها را نادرستی ها را در خود جا دادن کل اون اعمال رو بیرزش کنیم تا اونجا که از احسان هیچ نتیدی نبریم به نظر می رفت نماز روزه نخواهیم داشتیم حالا شما آقای روزدار خانم روزدار مؤمن روزدار هم در روزهای رمضان، شبهای رمزان هم در بعد از رمضان می توانید اعمال خود را عبادات خود را نماد روزه و تلاوت قرآن خود را با دیگر کارهای مقاسه کنید. اگر نتیجه این نماد روزه و قرآن خانه این است که شما بازن و فرزندان خود مهربان کرده هر نوع خشونه سوی با خانواده با فرزندان داشته اید بطرد کرده اید کمش کرده اید خواسته های شرعی و قانونی فرزندان را براورده ساخته اید به اونا رسیده اید خیشان مطبع دوم بعد از همسر و شریک زندگی و فرزندان تخت و کفر خالها ها خاله ها کلیه خیشان را مورد بررسی قرار داده اید در حد امکانت به دردل آنها گوش داده ای. به نیاز اونها کرده اید بالاتر از این یک کمی سراتر بردیم در زندگی با شریک با همسایه، با دوست اسلامی تر رفتار کرده اید سعی کرده اید؟ با او خیلی مخلصانه‌تر، تر تر راست و درستر رفتار کنید اگر چنین هستید نمازاتون قبوله و روزاتون انشالله درسته زیرا این تمرین ها به شما نتیجه داده ولی اگر خدای نخواسته نتیجه نماز ها و روزه ها بگونه است که شما هیچ تغییری در کارهای اجتماعی و اخلاقی خود با دیگران مشاهده نمیکنید همون بوده که قبل از رمضان بوده اید تفاوت نمیکنه اگر در دکتر شما با دیگران که محور سرنوشت است دقه فرمایید ما در دو محور باید حرکت کنیم و در دو محور هم نتیجه کارمون نبینیم اول رفتار با خدا ظاهرش نماز روزه تلاوت قرآن و حد دادن زکات باطن همین, همین محور همین مطلب همین از اخلاص فقط برای خدا فقط عظمت خدا را در نظر گرفتن در محور دیگر رفتار با خلق خدا راستگوئی درستکاری رفتار با خلق خدا اول از نزدیکون شروع میشه شما میدانید یا باید بدانید علت این که خداوند جل جلال احسان به پدر و مادر رو قریب و همراه با پرستش خدا یاد کرده هر جا در بران فرموده لعبالله اولا تشکو بیه شیعه الله را پرستش کنید و در پرستش با او شریکی قرار ندهید هر جا این جمله آمده به دنبالش آمده او و به لوالزین احسان و به پدر و مادر نکویی کنید خوبی کنید. در قرآن هیچ جا صحبت از پرستش خدا نشده است که دستور به احسان پدر و مادر نداده باشد. هر جا صحبت از پرستش خدا شده، بلافاظه دستور به احسان پدر و مادر نده این موضوع به حدی حساس از نظر بار تعالی که در یک سوره از سوره های قرآن خداوند جل رو روش دروس و روش درست و نصیحت های سرنوه ساز یک پدر زاغرانی به نام لقمان برای بندگان مؤمن بازگو کرد اسم کلمه لقمان اسم این حکیم که در تاریخ مشهورت در قرآن یاد نشده متعارفان یاد شده اعوذ بالله من الشیطان و وجو و اذ قال لقمان لابنه همین کلمه لقمان که بیان یونانی است یونانی بودن هست. در قرآن یاد نشده لقمان وقتی نصیحتی برای پسران برای پسرش در نصیحت لقمان دستور به پرستش خدا بود ولی دستور به احسان به پدر و مادر نبود ظاهراً نه اینکه لقمان نمی‌داند چون لقمان خودش کفر بود سلاح نبود مناسب نبود که به بی پسرش بگوید ای پسر تا مرا راضی نکنی به بهش نمی به سعادت نمی رسی او مناسب نبود حکیم زاخرانیونانی حضرت لقمان دستور به احسان به پدر و مادر را انداخت نگفت خداوند وقتی نصیحتهای او را بازو کرد سخن لقمان را قط نمود و دستور به احسان به پدر و مادر را داد. اینطور لوطمان فرمود یا بنیه لا تستغ بالله ان الشركه لظلم عظیم سخن لوطمان حکیم در روایت پروردگار متعال جل جلاله برای, برای برای بندگان مؤمن لوطمان میگوید ایی سارام ایی سارای عزیز ایمان دکراست با خدا امباس و هم تا قرار نده بلا شک هرستش غير خدا ستمي بات بوزركة إن شركة لظن نظم خدا فانسو خلال لقمان وقعتك بلو فصل فرموت ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المسيج وإن جاهداك على أن تشتك بما ليس لك بعلم فلا تطغما. و صاحبو ما فی دنیا معروفه خداوند در میان نصیحت های لقمان این موضوع را به عنوان جمله معترضه بیان کرد فرمود ما توصیه کرده این انسان را که به پدر و مادرش خوبی کند مادری که دو سال او را به گرفتاری و سختی تحمل کرده طور ما به انسان این است که سپاس گو مرا و پدر و مادرت را سپاس گو خدا را و پدر و مادرت را چون به سوری من است سرنوشت یا بازگشت و اگر پدر و مادر در شرایطی هستن که تو را وادار کردن به کفر از آنها اطاعت نکن ولی زمنین که اطاعت نمی باید با آنها به خوبی رفتار کنی برگردیم به اصل قضیه فلسفه ای این که احسان و احسان به پدر و مادر را همراه با پرستش خدایا شده شاید این باشد که اگر انسان نتواند پدر و مادر را راضی و خوشنود نگهدارد دارد غیر ممکن است بتواند دیگران را راضی و خوشنود کند مگر میشود کسی که عزیزترین کسان خود را از خود رنجانید به اونها تبدو نکرد نیاز اونها را بقرف نصاف حق اونها را نداد مگر می شود چون کسی به همسایگان و شرکا و دوستان و رفقا احسان کند نسبت به آنها گذرد داشته باشد غیر ممکنه باور کردنی نیست چه اگر معروف است اگر گل بوی خوشی داشته باشد اول به اطرافانش می دهد اگر وجود انسانی دارای خریزه و استعداد احسان باشد نیکوکاری اول که در مادر خود را خوشنود می کند تا برسد به دیگران این یک واقعیت است بعد پدر و مادر زن و پرزندان و برادران و خواهران و بقیه تا برسیم به همسایگون و شرکا. حالا اگر شما با نماز روزتون نتوانستید روشتون را در خانواده بهتر کنید برخوردتون رفتارتون از هر در هم از نصیحت و ارشاد هم از دراز بسترکده نیاز هم از کمک های مالی و مادی که لازم است، از هر در هم از گذشت مهمترین احسان این که انسان خطا و بدیهای افراد خانواده را ببخشد حبيثة ابن الزعيد بخدمة رسول الله ما فقفت يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني قال عليه الصلاة والسلام لا لئن كنت كما تكرت فكأنما تسفهم المال او كما قال عليه الصلاة والسلام ايكي ازياران وفهم انبار جوفت يا رسول الله من خيشاني دار انت حسن دون اخو بمي كنام انها بمن بعدين مي كنام فاسوك حزك صلى الله عليه وسلم معنية شون مي شبت انت براي ما قابل فهم باشا فرمون اگر چنان است که میگویی تو به حد اعلای نیکوکاری رسیده ای در این قسمت و آنها در حد اعلای بدی قرار دارند که در مقابل احسان اونا بدی میکنند. بنابراین یادمون باشد احسان خوبی کردن وقتی است که در مقابل خوبی نباشد اگر در مقابل خوبی باشد اینکه یا عجب ندارد یا کم عجب دارد زیرا احسان در مقابل احسان ثابت میکند که انسانی که این کار انجام میده در حد یک حیوان معمولیه حیوان ها که شعور عقل کامل ندارن مکلف نیستن و سائل زندگی انسان ها هستن با وجود این بین خودشون ربطار و ببونه بگونه ایست که در مقابل احسان به همدیگر احسان میکنن در مقابل بدی هم به همدیگر بدی میکنن بنابراین احسان شرعی وقتی که در مقابل بدی و نادانی نسبت به خیشان و دوستان و بستگان و آشنایان احسان و گذشت تقدیم شود این میشود احسان در اسلام ادالت داریم و گذشت ادالت این است که قانونن جزای بدی بدی باشد ولی گذشت و عفو و بخشش که از مرتبه بالاتری به نشت قرآن برخوردارد این است که انسان در مقابل خطا و اشتباه افراد خانواده دوستان خیشون خیشان بستگان سرکا در مقابل خطای آنها گذشت کنند میخوانیم؟ و جزا و سیعتم سیعتم مثل فمن و وأصلحها فأجرُه على الله در آیه دیگر فرمود و أن تعفو أقرب للتقوى جزای بدی بدی مانند آن است ولی اگر شما بدی دیگران را ببخشید و در مقابل خوبی تقدیم کنید این به مراتب بالاتر است هست. اساس ترین مرحله پایان عبادت هر انسان است که به قول معروف می تواند انسان کارهای خود را کازی کند و در هر روز در در پایان روز عبادت رو روزش را رو ارزیابی می کند و در هر شب می تواند هنگام خواب کارهای خود را بررسی کنه ببینه چه کرده امروز واقعا چقدر بهتر شده یا نه مثال میذارم خدمتتون در پایان روز اگر شما به خاطر دارید موردی که به خاطر خدا گناهی نکرده باشید برای تعظیم خدا حرف بدی نزده باشید توانسته این غیبتی بکنید تومتی نزنید ولی بیاد فرمان خدا افتادید از اون غیبت و خودداری کرده اید توانسته را زایر کنید ولی برای اینکه خدا از باشد مورد خشم خدا واقع نشوید از زایر کرده حق و اون رفیب و اون می توانستی از یک آدم کار عضو خانواده انتقام بگیری با او پرخاش کنی ولی به خاطر اینکه که رحم به جا آورده باشی حق خیشاوندی را به طریق اولا عدا کرده باشی بدی او خشم او کینه او دشمنی او نادانی او را نادیده گرفته ای. اگر چنین این مراحلی در ذهنتون هست عبادتاتون قبول است. شما در اون روز مومن ولی اگر در زندگیتون در 24 ساعت چنون موردی نیست امروز نشانه ایمان در شما مشخص شده حالا روزی باید چه باشه خدا میدانم این در قرآن مجید آمده است و این هم آیات از سخن پربراکت پروردگار متعال جل جلاله میخوانیم فعما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما كثيكي در زندگی تغیانو سرکشی نماید. و لذت ها و منافع این زندگی نزدیک را ترجیح دهد و اثرم حیات دنیا یعنی حرکت هایش اقداماتش، ابداماتش تلاشش عرق ریختنش کردنش نه برای مسائل بعد از مرگ است او اصلا از ها خبری نداره شادتر باشه بیشتر بخورد بهتر بپوشد بر وسیله باشه اگر چنین است اصلا در برنامه کار و زندگیش هیچ فکر و مسئله از بعد از مرگ نیست هیچ آمادگی استدادی برای همون نیست فا این نلجخی فا این نلجخی مهی بدون شک آتش سوزان بعد از مرگ جایگاه اوست نصیبی اوست و اما کسی که در کارهایش موزه گیری در برابر او در نظر می گیرد و اما من خواف و مقام غبیه هر کاری انجام می دهد حساب این می کند که از ها، فیلم برداری می شود از زندگی او دست و پاهایش هم زفت می کنند در سلولای مغزش هم کلیه اعمالش به ثبت می رسد و روزی فرا خواهد رسید که فیلم زندگی برو ارزه می شود رو گفته می شود ها کتاب کتابنا یامتقا علیکم بالحق انا کن نستن تخما کنتون تعملون آخر سوره جاسیه می خوانیم روزی صاف در موقع دادرسی کلی به هر فرد گفته می شود اینه کتاب ما علیه شما سخم می گوید به حق ما نسخه خبرداری می کرده از اونچه شما انجام میدادید. دادید بیگونه دیگر تفهمه ما استنساخ می نمودیم اون کارهایی را که شما انجام می دادید خب حد کنم از ما با نسخه کار خودش در روزه زیر ساب رو خواهد شد با اونجاست که هر انسانی میگوید یا وای لکن اعمال این کتاب، لای یه غادر سطیره و نه کبیره، اینا احشاء. ضایب این چی کتابی است که تمام کارهای کوچک و بزرگ و ریز و درشت ما را شمرده. با انجام خداوند برای آگاهی ما فرمود ما اتا و وجد ما عمل حاضر است. اونجا موقعیت سودادره که هر کد، هرچی کرده ی خودش حاضر می‌آباد. باید کسی در کارهایش اون را در نظر می گیرد نتیجه این حقیده چیه می شود وانه هم نفت عامل هوا جلوب هوا و حوث و خواستهای نفتانی خودش می گیرد بله این همه می که ظلم کردن نفت داره انگیزه اصلی ظلم نفتجویه دیگه میخواد بیشتر داشته باشد خب ظلم میکنه. از بار قانون و حق نمی تواند به خواستهش برسد. خیلی هوایش بلنده میخواد از قدرت و زور و تقلب و دروغ به مقصد برسد اگر کسی جلوی این خواسته های ناشری این بلند پروازی ها جلوب هوا و, هوا و بگیرد در حد حق و قانون و دستور خدا حرکت کند این میشود مومن فإن الجنة هی المعوان. بهش سعادت ابدی جای باید و جز این نیست حقیقت همین است. برای بهش سردا مطبول شدن است. مگر از دیار دنیا که سر دراخ داری چه بسا نماز بزاران و روزدارانی هستند که سر به زیر انداخته خود را به کلمات قرآن مشغول کرده جگر همسر از خونست از بد اخلافی او فرزندان از به او نفرین میکنند منتظرند بابا بی میرد و از شهرش راحت شدند برادرها و خواهرها و عمه و خاله ها از او خبری ندارند به وجود قدرت داره پول داره سرد داره حالا این قرآن برای او چه نفی دارد گفت قرآن بدین نمطخانی ببرین رونت مسلمانی نمی شود باید خارج از تلاوت قرآن به مفهوم و محتوى و مقصود قرآن و نماز توجه کرد شاید رسول اکرم صلی الله علیه آله این منطور داشته باشد که می فرماید ار رجل رسلی من صلاتهی نسف ثلثها، ثلثها، ربعها، خمصها. و رجلی صلی، و نه سلب من صلاته، ایلا تاب و رکوع و سدود، آوتمان قالا علیه سلطة سلام. <تصفيق> معنی فرمانش نباید چنین است. انسان مسلمانی هست که نماز می‌خوند، از نمازش نصفش دارد. و کسی نماز می‌خوند دو سه نمازش دارد. و کسی نماز می‌خوند یک سه و یکی میخواند نماز را یک چهارمش دارد و یکی دیگر یک تنجامد سپس بقیهش فرمود یک شوم یک هفتم، تا فرمود و انسان مسلمانی هست که نماز میخواند از نمازش جز خستگی و زحمت و و سجود هیچ چیزی ندارد برای اینکه وقتی ما تمرین میکنیم خارج از تمرین به تمرین میپردادیم چه ورزش چه تجارت چه مشک سربازی در دوران آموز سربازی چه نماز که یک مشک خداییه اگر بعد از تمرین به تمرین نپردازیم در هدف تمرین حرکت کنیم مفیده در این صورت تمرین به خوده مفید نخواهد بود ولی برحال بازم از انجام ندادنش بهتره هم. این که اون این امر مسلمه است که کلیه افراد به که اصطلاح متفکری که بر ضد نماز ایستادن و خود را مسلمان می دانند مهمترین دلیلشون این است که بسیاری از نماز از نمازشون هیچ کار مثدی انجام نمی دهند و در نتیجه نه تنها نماز رو اونها اثر نگذاشته بلکه به نظر بعضی بعدی ها بدتر هم شده زیرا او در سایه نماز بزاری بیشتر میتواند کلاغ بزاری کنند. بیشتر میتواند گروه بیگوید. به خاطر اینکه نماز بزارت، نماز بزارت، معروف فریب رو میخورند و گروه راست را را دارند. این مهمترین مدرک ملاحده و بیبینانیست که بر ضد نماز و بر ضد مذهب موزگیری کردند. بنابراین اگر کسی بد نماز بخواند، نه تنها خودش نتیجه نمیگیرد، بلکه با بدناماز کندن از باعث گمراهی دیگران هم می شود که احتمالا گناهی به حسابهو نبیشته می شود اینی که از مساعد کلی بود در رابطه با ماه رمضان، توصیه اسلامی ما به پدران این است که در ماه رمضان به فرزندان و مادر فرزندان و خود بهتر توضع کنند تر باشند. برخورده چه با افراد خانواده مشکل را حل کند هیچ وقت این چیزی را نیست اگر شما فکر می‌کنید با قیافه گرفتن اخم کردن احیانا طعنه‌زن ناسزا گرفتن مشکل خانواده حل می‌کنید خیلی اشتباه کرده ای. فقط این قیافه گرفتن و اخم و طعنه و طنز بدگویی خیلی نسبت به خانواده نفس که شما روی آتش خانواده می غیر از این نیست ولی با گذشت با کوتاهی، با حس تفاقوم با مذاکره کردن حسد برخونها دادن یا جواب خانه کننده برخونها دادن یا مطابق خانه کننده اقرام نمودن پدری که متقدر هر که گفت فرزندان باید مو به مو اجرا کنند عمل کنند فرزند حق اضار نظر ندارند این پدر فرعون خانواده است همه افراد منتظر مرگش هستند مسائل خانوادگی. ولی او که شب از از مسائل زن همسر بهتر می فهمد باید به گفته او توجه کرد بعد از تمام رسول اکرم صلی الله علیه و آله در موارد خیلی مهمی خاصه و پیشنهاد همسران خود در مسائل زندگی حتی در مسائل دینی قبول می‌ساموند مشهور است در شفای دیبیه وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که مهاجرین در حال احرام فرمود فعلا مصالح کرده این نمی تونیم این مکه باید سرها رو بتراشیم و برگردیم تا قرارداد سال بعد بیاییم صحابه کرام گفتند یا رسول الله شما فرمودید که در خواب دیدید که ما می کنیم پس کو تواف این که برای ما سرشکستگیه برابر منافقان یهود در مدینه و برابر مشرکان در مکه که ما شکست بخریم ما لباس احرام بپوشیم که طواف کنیم اونهایی که مشرف به حد شدن میدانند علاقه یک مؤمن به کعبه در زیل واسه اقرام چه اندازه زیاد است تا حدی که به هیچ وقت قابل وقت نیست مؤمنانی که تاکنون مشرف نشدن این احساس در آنها هنوز زنده نیست خیلی برای مهاجر سنگین بود که در حالی که 17 روز لبک میگوستن منتظر کعبه بودن منتظر جمال خانه خدا بودند. حالا سرا تراشیده در فاصله 26 کیلومتری که به برگردن مدینه برگردن در قول جواب بزن و چی چه بگنیدن جواب منافقانویه ها چی بگنید و طعمه های که از دنبالشون میاد چگونه پاسخ بدن رسول الله صلی الله علیه و علیه فرمود من نبفتن انسان سال تواف میکنی. در خواب دیدم که تواف میکنی و این خواب ساله بعد تحقیق و یافت